ژن خودخواه، نوشته ریچارد داکینز فصل پنجم، تهاجم، صبات و ماشین خودخواه بیشتر این فصل درباره تهاجم است موضوعی که بسیار مورد تعبیرهای غلط واقع شده است ما همچنان فرد را ماشین خودخواهی در نظر می گیریم که برنامه ریزیش توریست که هرچه در کل به نفع ژنهایش باشد انجام میدهد. این شیوه بیان برای راحتی کار است در پایان فصل دوباره به زبان ژنها برمیگردیم برای هر ماشین بقا یک ماشین بقای دیگر که فرزند یا خیشاوند نزدیک خود او نباشد مثلا یک سخره، رودخانه یا لغمه قضا بخشی از محیط محسوب می‌شود این چیزی که میتواند ماهی دردسر باشد یا شود از آن استفاده کرد او از یک نظر با سخره و رودخانه فرق دارد آماده است متقابلا حمله کند به این دلیل که او نیست ماشینی است که ژنهای نامیرای خود را در صندوق امانات برای آینده نگه داشته است و آن هم برای حفظ آنها از هیچ کوششی فروگذار نیست انتخاب طبیعی به ژنهایی برتری میدهد که ماشین بقایشان را طوری کنترل می کنند که به بهترین صورت از محیط بهرهبرداری برداری کنند و این شامل استفاده از دیگر ماشینهای های بقا به بهترین صورت نیز می شود چه آن ماشینها از گونه خود چه از گونه دیگری باشند در بعضی موارد به نظر می رسد ماشین های بقا نسبتا کم به زندگی یکدیگر دیگر دست اندازی می کنند برای مثال موش کور و توکای سیاه همدیگر را نمیخورند و هم جفتگیری نمی کنند یا برای داشتن جای زندگی با هم رقابت ندارن. حتی در این حالت هم نباید آنها را کاملا بر روی هم بی تأثیر بدانیم. ممکن است بر سر چیزی مثلا کرم خاکی با هم رقابت کنند. منظور نیست که آدم همیشه موش و توکای سیاه را در جنگ و در حال کشمکش بر سر کرم خاکی میبیند. در واقع شاید چشم یک توکای سیاه در عمرش هرگز به موش کوری نیفتد اما اگر جمعیت موش کورها را یکسره نیست و نابود کنید نتیجه این کار ممکن است برای توکای سیاه فاجعه باشد گرچه من نمیتوانم اتفاقی حدس بزنم که جزیات آن کار ممکن است چه باشد و از چه راه های غیر مستقیم پرپیچ و خمی ممکن است تأثیر بگذارد ماشین های بقای گونه های مختلف به روش های گوناگونی روی همدیگر اثر می گذارند. ممکن است شکارگر یا تعمه، انگل یا میزبان یا رقیبانی برای یک منبع کمیاب باشند. ممکن است به روش های عجیبی از آنها بحر شود. مثلا وقتی که گلها از زنبور اصل برای جابجا کردن کردن گردشان استفاده می کنند. ماشین های بقایی که از یک گونه اند برای دست به زندگی همدیگر آمادگی بیشتری دارند به چند دلیل یکی اینکه نیمی از جمعیت هر گونه می تواند بالقوه جفتی برای او و پدر یا مادر زحمتکشی برای فرزندانش باشد دلیل دیگر این است که اعضای یک گونه با شباهت زیادی که به هم دارند همه با روش های یکسان زندگی ماشینهای حفظ ژن در یک منطقه اند و مخصوصا بر سر همه منابع لازم برای زندگی رقیب همند برای یک توکا ممکن است موشکور یک رقیب باشد اما این رقیب هرگز آنقدر مهم نیست که رقابت با یک توکای دیگر اهمیت دارد ممکن است موشکور و توکا بر سر کرمی با هم رقابت کنند اما توکاها با هم بر سر کرم و همه چیزهای دیگر رقابت دارند اگر از نظر جنس هم باشند، ممکن است بر سر شریک جنسی رقیب هم شوند. به دلایلی که خواهیم دید، معمولا نرها با یکدیگر بر سر ماده ها رقابت می کنند. این یعنی اگر یک نر به نر دیگری که رقیبش است آسیبی وارد کند، احتمالاً به نفع ژنهایش تمام می شود. بنابراین به نظر می رسد، سیاست منطقی یک ماشین بقا این باشد که رقبای خود را بکشد و سپس ترجیحاً آنها را بخورد گرچه کشتن و خوردن همجنس در طبیعت رخ دهد ولی آنقدر رایج نیست که در تعبیر ضعیفی از نظریه ژن خودخواه قابل پیشبینی باشد البته کانراد لورنز در کتاب در باب پرخاشگری بر طبیعت خیشتندارانه و آقامن یه جنگ بین حیوانات تأکید می کنن. برای او در مورد جنگ میان حیوانات قابل توجه این است که به شکل مسابقات قهرمانی رسمی هستند مثل مشت زنی و شمشیربازی قواعدی دارند حیوانات با مشت دستکش پوشیده و شمشیر کند به جنگ هم میروند. ترساندن طرف مقابل و به رخ کشیدن توانایی های خود جانشین جنگ واقعی می شود. پیروز ها حالت و رفتار شکر از خورده ها را تشخیص می دهند و از وارد کردن ضربه یا نیش یعنی گاز ای که ممکن است نظرگیه ضعیف ما پیش بینی کند خودداری می کنند این تعبیر خیش تندارانه و بزرگ از تهاجم حیوانی را ممکن است همه قبول نداشته باشند. مخصوصاً کاملا نادرست است که انسان هوشمند بیچاره را به عنوان تنها گونه ای که هم نوع خود را می‌کشد و به عنوان تنها وارث قابل با دیگر اتهام‌های مانند اینها که ناشی از احساساتم سرزنش کنی اینکه یک طبیعت شناس بر تهاجم یا بر خویشتنداری حیوانات تعکید داشته باشد تا حدی بستگی دارد به اینکه چه نوع حیواناتی را مورد مشاهده قرار داده باشد و تا حدی نیز به پیشتابری او از تکامل مربوط می شود البته لورنس سرانجام طرفتار گونه نیک انسانی است حتی اگر در این مورد اقراق هم شده باشد در آن نگاه که حیوانات در حال جنگ را دستکش پوشیده می بیند دست کم مقداری حقیقت وجود دارد ظاهرا به نوعی ایسارگری شبیه است نظریه ژن خودخواه باید بتواند از پس وظیفه مشکل توضیح آن برآید چرا چنین است که حیوانات تا آخر قضیه نمیروند و افراد رقیب همگونه خود را در هر فرصت ممکن نمیکشند پاسخ کلی به این سؤال این است که جویی در کنار منافعی که دارد هزینههایی هم دارد غیر صرف وقت و انرژی که هزینههایی آشکار هستند برای مثال فرض کنید بی و سی هر دو رقیب من باشند و من به طور اتفاقی در مقابل بی قرار گیرم شاید برای من به عنوان یک فرد خودخواه معقول این باشد که تلاش کنم او را از بین ببرم ولی عجله نکنید سی هم رقیب من است و هم رقیب بی با کشتن بی من در واقع به سی هم نف میرسانم و یکی از رقبای او را حذف می کنم. شاید برای من بهترین باشد که بگذارم بی زنده بماند زیرا او ممکن است در گیر رقابتی با سی شود و این به طور غیرمستقیم به نفع من خواهد بود. نتیجه اخلاقی این مثال ساده فرضی این است که هیچ مزیت آشکاری در تلاش نسنجیده برای کشتن رقبا وجود ندارد. در یک نظام رقابتی بزرگ و پیچیده، از میان برداشتن یک رقیب لزوما با منفعت همراه نیست. ممکن است رقبای دیگر بیشتر از خود آن فرد از آن کشتن بهره‌مند شوند. این از آن درس های است که مأموران از بین بردن جانوران موزی باید فراگیرند شما یک آفت گیاهی ناجور دارید؟ راه خوبی برای از بین بردنش پیدا و آن را عالی اجرا می کنید. بعد متوجه می یک آفت دیگر بیشتر از خود شما دارد از نابودی آن استفاده می کند و شما در نهایت در وضعی بدتر از قبل قرار دارید. از طرف دیگر کشتن یا دستکم جنگیدن با بعضی رقبای خاص به صورت انتخابی به نظر نقشه خوبی میرسد اگر بی یک بیدسترب بزرگ دارای حرمسرای پر از ماده باشد و من یک بیتستر دیگر باشم که با کشتن او بتوانم حرمسرا را صاحب شوم خیلی عاقلانه است که در این راه سعی خود را بکنم اما حتی ستیز جویی گزینشی نیز هزینه و خطرهایی دارد به نفع بی است که متقابلا حمله و از داشته ارزشمند خود دفاع کند اگر من جنگ را شروع کنم در نهایت همانقدر که ممکن است من از بین بروم ممکن است او کشته شود شاید از آن هم بیشتر او صاحب یک منبع با ارزش هست و به این دلیل من به جنگش میروم. اما او آن را از کجا آورده است شاید در مبارزه به آن دست یافته است اتمالا باید قبل از من حریفان دیگری را شکست داده باشد شاید جنگنده خوبی باشد حتی اگر در این جنگ برنده شوم و به هرمسرا دست یابم ممکن است آنقدر شدید مورد ضرب و جرق قرار بگیرم که نتوانم از قنیمتی که گرفته ام لذتی ببرم علاوه جنگ همه وقت و انرژیم را میگیرد بهتر است فعلا اینها را هدر ندهم اگر تا مدتی هدفم پرورش خود و دوری از دردسر باشد بزرگتر و قویتر میشوم اگر حالا به جای حمله صبر کنم امکان بهتری دارم برای اینکه سرانجام با جنگ به هرمسرای او دست پیدا کنم این گفتگو با خود فقط نشان میدهد که تصمیم چه جنگیدم باشد چه نباشد حاصل یک محاسبه پیچیده گرچه خداگاه در مورد هزینه و سود کار است اینطور نیست که منافع بالقوه همه در جنگیدن باشد گرچه البته بعضی منافع چنینند و همین تردیب در طول یک جنگ هر تصمیم تاکتیکی در مورد اینکه با شدت بیشتری به جنگم یا کوتاه بیایم هزینه ها و سودهای خودش را دارد که باید بررسی شود مدت هاست که رفتارشناسان شناسان به صورت مبهمی به این موضوع پی برده اند اما جی مینارد سمیت که معمولاً رفتارشناس به حساب نمی آید آن را به صورت شفاف و محکم بیان کرده است. او با همکاری جی ری پرایس و جی آپارکر از شاخه ای از ریاضیات به نام نظریه بازی ها استفاده کرده است. نظر دقیق آنها را به جای استفاده از علایم ریاضی میتوان با استفاده از واژه بیان کرد البته با تلاش و موشهکافی بسیار مطلب مهمی که مینارد سمیت معرفی می کند به راهبرد تکاملی باثبات مربوط می‌شود. نظری که او رد آن را تا عقاید و ده همیلتون و ره مک آرتور پی می‌گیرد. راهبرد یک سیاست رفتاری از قبل برنامه ریزی شده است یک نمونه از راهبر چنین است به حریف حمله کن اگر فرار کرد دنبالش کن اگر قصد داشت تلافی کند فرار کن مهم از توجه داشته باشیم که راهبر چیزی نیست که یک برد آگاهانه از آن پیرو بی کند فراموش نکنید که تصور ما از حیوان یک ماشین بقای خودکار است که با یک کامپیوتر از پیش برنامه ریزی شده ماهیچه را کنترل می کند برای اینکه راحتتر تصوری از راهبرد داشته باشیم، آن را یک مجموعه دستورالعمل ساده که به انگلیسی نوشته شده، در نظر می‌گیریم. با سازوکار ناشناخته، حیوان طوری رفتار می‌کند که به نظر می رسد دارد از این دستورها پیروی می‌کند. یک راهبرد تکاملی با (ESS) راهبردی است که اگر بیشتر اعضای یک جمعیت آن را اختیار کنند، راهبرد دیگری نمیتواند جایگزین آن شود. این یک نکته مهم و ظریف است به بیان دیگر می شود گفت بهترین راهبرد برای یک فرد بسته به این است که اکثریت افراد آن جمعیت چه کنند؟ از آنجا که بقیه آن جمعیت را افرادی تشکیل میدهند که هر کدام سعی در بیشتر کردن موفقیت خود دارند. تنها راهبرد پایدار اون است که بعد از پیدا شدن هیچ شخص نوجوی دیگر نتواند آن را تغییر دهد ممکن است بعد از تغییر محیطی مهمی یک دوره کوتاه تکاملی ناپایدار پیدا شود حتی شاید نوسانی در جمعیت رخ دهد اما وقتی به یک راهبرد تکاملی باثبات رسید پایدار خواهد ماند انتخاب انحراف‌زان را مجازات می کند. برای ربط این موضوع به تهاجم به یکی از سادهترین موارد فرضی مینارد سمیت توجه کنید فرض کنید در جمعیت یک گونه خاص فقط دو نوع راهبرد جنگی به نامهای اقاب و کبوتر وجود دارد این اسمها هستند و هیچ ربطی به های پرنده هایی که اسمشان آمده ندارند در واقع کبوترها نسبتاً تهاجمی هستند هر فرد در جمعیت فرضی ما یا در طبقه اقاب قرار می یا در طبقه کبوتر عقاب ها همیشه تا جایی که بتوانند به شدت و بی محابا می جنگن. فقط وقتی کوتاه می که به شدت زخمی شده باشند کبوترها فقط با یک وقار قراردادی طرف را میترسانند هرگز به کسی آسیب نمی رسانند. اگر اقابی با کبوتری بجنگد، کبوتر فوری فرار میکند و بنابراین زیاد آسیب نمی بینند. اگر یک اقاب با عقاب دیگر درگیر شود، آنقدر ادامه میدهند تا یکی از آنها به شدت زخمی شود یا بمیرد. اگر کبوتری در مقابل کبوتر دیگر قرار گیرد، هیچ کدام زخمی شوند. مدتی برای هم جست و قیافه میگیرند، تا یکی از آنها خسته شود و بخواهد کوتاه بیاید و بنابراین عقب نشینی کند فعلا فرض را بر این میگذاریم، راهی برای اینکه فرد از قبل پیش بینی کند فلان رقیب از نوع عقاب است یا کبوتر وجود ندارد. فقط وقتی این را میفهمد که با او جنگیده باشد و از جنگ هایی که در گذشته با افرادی انجام داده چیزی در حافظش نمانده که از آن کمک بگیرد حالا به عنوان یک قرارداد کاملا دل بخوا. به این جنگنده ها امتیاز می دهیم. مثلا، پنجاه امتیاز برای برد و صفر امتیاز برای باخت. منهای صد برای زخم شدید. منهای ده برای اطلاف وقت در مسابقه طولانی. و میکنیم می کنیم می شود این امتیاز ها را مستقیما به ارز رایج ژن بقا تبدیل کرد. کسی که امتیاز بالا می آورد، یعنی میانگین بازدهش بالاست، کسی است که از بسیاری از جنهای خزانه پیش افتاده است درون یک گستره وسیع ارزشهای عددی در عمل به درد تحلیل نمیخورند، ولی به ما کمک میکنند که درباره مشکل بیاندیشیم برای ما این که هنگام جنگ اقاب احتمالا کبوتر را مغلوب میکند یا نه اهمیتی ندارد از قبل جواب را میدانیم. عقابها همیشه برنده هم. براینمار جالب این است که بدانیم آیا اقاب یا کبوتر یک راهبرد تکاملی باثبات است اگر یکی از آنها ایاساس یعنی همان راهبرد باشد و دیگری نباشد باید انتظار داشته باشیم آنکه ایاساس است تکامل یابد از جنبه نظری این امکان وجود دارد که دو ایاساس وجود داشته باشد این در صورتی درست است که بهترین راهبرد برای هر فرد فرزی این باشد که راهبرد اکثریت آن جمعیت هرچه هست عقاب یا کبوتر عینا همان را دنبال کند در این مورد گرایش جمعیت این است که به هر کدام از دو وضعیت پایداری که اول به آن رسید محکم بچسبد اما همونطور که اکنون خواهیم دید در واقع هیچ کدام از این دو راهبرد یا کبوتر به تنهایی از نظر تکاملی باثبات نیست و بنابراین نباید انتظار تکامل هیچ کدام را داشته باشیم برای اینکه این را نشان دهیم باید میانگین بازده را محاسبه کنیم فرض کنید جمعیتی داریم که فقط از کبوتر تشکیل شده است هر وقت میجنگند کسی آسیب نمی بیند در رقابت آنها فقط یک مراسم رزمی طولانی اجرا می شود اطمال مسابقه خیره شدن به هم فقط وقتی به پایان می رسد که یک طرف کوتاه بیاید آن وقت برنده پنجاه امتیاز می گیرد که در این جنگ به منبع مورد نظر دست یافته است ولی ده امتیاز به عنوان جریم از او کم می شود زیرا هنگام خیره شدن به هم وقت زیادی را تلف کرده است در مجموع چهل امتیاز نصیبش می شود بازنده هم منهای ده امتیاز به خاطر اطلاف وقت می گیرد. روی هم رفته هر کبوتری پنجاه درصد احتمال برنده شدن دارد و پنجاه درصد احتمال بازنده شدن دارد. بنابراین بازده کار هر کدام در هر مسابقه نصف میانگین به اضافه چهل و منهای ده یعنی به اضافه پونزده است. بدین ترتیب به نظر می رسد عمل کرده کبوترها در آن جمعیت خوب باشد. اما حالا ورز کنید در آن جمعیت یک اقاب جهش یافته پیدا شود. چون تنها اقاب آنجاست. در تمام جنگ ها در مقابلش یک کبوتر قرار دارد. اقاب همیشه کبوتر را مغلوب می کند. بنابراین در هر جنگ به اضافه پنجاه امتیاز می آورد و میانگین عملکردش همین است. او در مقابل کبوترها که میانگینشان به اضافه پونزده است از برتری برخوردار است. در نتیجه ژن اوقاب به سرعت در آن جمعیت منتشر می شود. اما آن وقت دیگر اینطور نیست که در تمام جنگ ها در مقابل اوقاب یک کبوتر قرار گیرد. در یک مثال افرادی اگر ژن اقاب آنچنان با موفقیت منتشر شود که کل جمعیت از اوقاب تشکیل شود، جنگ فقط بین اوقابها صورت می گیرد و اوضاع طور دیگری می شود. وقتی دو اقاب با هم درگیر میشوند، یکی به شدت زخمی می شود و امتیازش منهای صد است. در حالی که امتیاز برنده به اضافه پنجاه است. در جمعیت اقاب ها، هر اقاب ممکن است در نیمی از جنگ ها برنده و در نیمی از آنها بازنده باشد. بنابراین نتیجه حاصل در هر جنگ چیزی است بین منهای صد و به اضافه پنجاه یعنی منهای بیست و برای هر کدام است. حالا فقط یک کبوتر را در میان جمعیت اقاپا در نظر بگیرید. یقینا در همه جنگ ها بازنده است. ولی از آن طرف هرگز آسیب نمی میانگین بازده او در جمعیت اقاپا صفر است. در حالی که میانگین نتیجه یک اقاب در جمعیت اقاپا منهای 25 است. به این ترتیب ژن کبوتر احتمالا در آن جمعیت منتشر می شود. طوری که من داستان را شهر دادم چنین به نظر می رسد که دائم یک نوسان در جمعیت برقرار است. جن اقاب رو به افزایش می گذارد و در نتیجه زیادتر شدن اقابا جن کبوتر برتری میابد و تعدادش زیاد می شود تا دوباره جن اقاب رو نقب بگیرد و همینطور تا آخر. اما لازم نیست چنین نوسانی وجود داشته باشد. در این نظام امتیازدهی قراردادی که ما از آن استفاده می کنیم نسبت ثابتی از تعداد عقاب به کبوتر وجود دارد اگر حساب کنید این نسبت 5 دوازدهم کبوتر به 7 دوازدهم اوقاب است همین که این نسبت ثابت برقرار شود میانگین عملکرد اقاب با میانگین عملکرد کبوتر برابر می شود به این ترتیب انتخاب طبیعی هیچ کدام را به آن دیگری برتری نمیدهد اگر تعداد اقابهای آن جمعیت رو به افسایش گذارد به طوری که در این نسبت 7-12 نباشد کم کم کبوترها امتیازشان بیشتر می شود و نسبت مربوطه به سمت وضعیت پایدار میل می کند درست همانطور که نسبت جنس نر به ماده پایدار و 50 به پنجاه است، نسبت اقاب کبوتر در این نمونه فرضی هفت به 5 است. در هر یک از این موارد اگر نوسانی نسبت به وضعیت تعادل پیدا شود، نباید چندان قابل ملاحظه باشد. این موضوع در ظاهر کمی شبیه به انتخاب گروه است، اما در واقع از آن دست نیست. از این نظر به انتخاب گروه شباهت دارد که این امکان را به ما میدهد تا جمعیت را. دارای یک تعادل پایدار در نظر بگیریم که ارگاه تعادل دران به هم بخورد، گرایش بازگشت به وضعیت قبل در آن هست. اما ایاس اس مفهومی بسیار باریکتر از انتخاب گروه هست. به اینکه بعضی گروه ها از بعضی دیگر موفقتر عمل کنند هیچ ربطی ندارد اینا می میتوان با استفاده از نظام امتیازدهی قراردادی مثال فرزیمان به خوبی نشان داد در یک جمعیت باثبات که شامل هفت دوازدهم اقاب و پنج دوازدهم کبوتر است میانگین هر فرد شش و یک چهارم میشود چه آنفرد اقاب باشد چه کبوتر، این عدد فرقی نمی کند. شش و یک چهارم، خیلی کمتر از میانگین بازده هر کبوتر در جمعیت کبوترها یعنی پونزده است. فقط در صورتی که همه میپذیرفتند کبوتر باشند، آن وقت به نفع تک تک کبوترها بود. در انتخاب گروه ساده، هر گروهی که در آن همه افراد به صورت دو قبول کنند که کبوتر باشند، عملکرد کرد بسیار موفقتر خواهد بود. از گروه رقیبی که در وضعیت ایاس خرار قرار دارد در واقع تبانی برای تشکیل گروه فقط کبوتر بهترین گروه ممکن را سازد. در گروهی که شامل یک ششم اقاب و پنج ششم کبوتر است میانگین بازده در هر سابقه 16 و دو سوم است این موفقترین تبانی ممکن است اما به جهت اهداف فعلی کاری به آن نداریم یک تبانی ساده همه کبوتر با بازده میانگین پانزده برای هر فرد خیلی بهتر از برقراری ISS برای آن فرد است. بنابراین نظریه انتخاب گروه گرایش تکامل به سوی یک تبانی همه کبوتر پیش پیشبینی می کند زیرا گروهی که شامل 7-12 اقاب است موفقیت کمتری دارد. اما گرفتاری توانی ها حتی در مواردی که در دراز مدت به نفع همه باشد این است که در معرض سوء استفاده قرار دارند درست است که در گروه همه کبوتر افراد بازده بهتری از گروههای های دارند اما متاسفانه در جمع کبوترها بازده یک عقاب تنها آنقدر بالا میرود که چیزی نمیتواند مانع تکامل عقاب ها شود بنابراین این جمع با خیانت از درون محکوم به شکست می شود وضعیت ایاس اس است نه به این دلیل که مشخصا به نفع افرادی است که در آن هستند بلکه فقط به این دلیل که نسبت به خیانت از درون مسون است